اللهم صلوات و سلام علیکم و برکات و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و و رحمت و و رحمت و و رحمت و و و رحمت احسوس که این ما در بحث های مکاسب چون متن کتاب مرقوم مکاسب حتی هم چه فرصایی هست برای آشنایی اجمالی با متن یه مقداره. نه همه عباراتی چون خونده میشه در اصول هم متعارف ما این بوده که مصباح اصول مرقوم از یه متن رو به اختیار کردیم برای اینکه آن مراجعه کنم و اما توضیحات بعدی بعد میاد این توضیح نهایی راجع به کتاب نیست خب ایشون بعد از اینکه قبول میکنن که جنای کیفیت یه در ویژه سوتو بعدم قبول میکنن که فرقی نمیکنه قرآن رو هم انسان با اون کیفیت بخانه فرق نمیکنه میکنه جناق بعدم باز متعرض یک مطلب که در زمان ما اساس میان مثلا برای گرفتاری خودشون یک صداهایی که مثلا روزی روزی میخوان با یک خاصی که دنبال فکر خودشون نه دنبالی. خب خوب اینم راجع به زمان شیخ و زمان ما هم هست همه زمانا هم. تازگی نظر بعد از این مطالب... این مطالب دیگه نمیخواست مدرشه بعد از این مطالب ایشان متعرضه بعد از این که قبول میکرد مثل مرحوم شیخ دلیل و عمده شون بر حکمت جنا یکی اجماعه یکی هم مجموعه روایات چه روایاتی که در تفسیر آیاته چه روایاتی که مستقلن در جا بغناز بعد ایشون میفرمان که بعد از این مطلب میفرمان که در زمان ما گاهی در اصل یعنی حرمت جنا بحث شده که آیا حرام هست یا نه و اخرا من حیث الموضوع که موضوعش و سادس از حیث بعضی از موضوعات گفتن جنا اشکال عمل هم اول که در حرمت این رویشون از محدث کاشانی صاحب کتاب وافی و از مرحوم سبزواری صاحب کتاب کفایه و ذخیره مرموم سبزواری به هر حال مرز بزرگواری است انصافا سعی کرده نباوری هایی داشته باشه ما چند تا داریم داریم لبقایی متاخره ما الان یک روزن توضیح سعی کردن یه مقدار مثلا از اون متعارف کارش بشن و برای خودشون استقلال فکری و زیربنایی پیدایی یکیش هم مرموم و مرموم محدث سبزواری است یا مرموم محدث سبزواری و انصافان هم خوب ذخیره نکات لطیفی داره حالا موافقت باش واقعیا با شد درست نباشه اما داره در این جهت مقدار شبیه استاد مرحوم آقای خویی سعی کردن از این خارج بشن علایه‌خانه مرحوم مهندس کاشانی نه اونقدر سعی در به هم ریختن نداره چون مهندس هم و همونی که متارفه لكن خود مرحوم کاشانی در وافی کلامی داره البته مرحومشی اختبار قاعده ای که ارز کردن ول محکی من کلامه خودشون به وقتی مراجعه نکردن کذالک به کتاب زخیر به کتاب کفایه هم مراجعه نکردن متاسطفانه کفایه مرحوم سبزواری البته راجعه مرحوم سبزواری ایک فاظل معاصر ایشان داره در اون کتاب درول منصور خیلی بیشان بد و میگه فوق خلال زیاد و انصافن هم یعنی ینی انصافن من نمیخوام توضیحات بیشتری بدم در میشه مراجعه کنم خیلی انصافن مطالب به برای غیر واقعی روتون با نوشته و خیلی از شن مردم سبزی هم سبز چون سعی میکنه نول داشته باشن خینن های با مشکلات وبوس بگیر میشه این کار کرد اما ندارم حدی که اون آ فاض موثرشون نوشته اون احانایی که دیشان کرده انصافن فییریر محندگی به هر حال این راجع به این مطلب راجع به عبارت وافی چون مرموم شیخ هم نرد نکرد منم مراجعه نکردم چون من خیلی معتقده به این سنخ بحث ها نیستم من چند بار در مناسبات متعدده متعدد شدن یه فتره زمانی چه سنی ها و چه شیعه ها یکی از مطالب علمی پیشون نقل ها بود در این کتب فقهی ما حتی فقهی از اصلا میگن و حکیه انشافیی کذا؟ و حکیه انشافیی قول آخواه و حکیه قول انصاف این اصلا بر تازه اون حکیه انشافیی هم گاهی اوقات تو قول اصحاب شافییه که مثلا پس اون مراد اصحاب نشاگیر داشت یعنی علمای شافیی مثلا مثلا در کتب شرفت داری که خراسانی ها خراسانی های شافعیه. یه چیز نهارو کردن شافیی بقدر یه مقداری الان در کتب فقهی و اصولی اهل سنت وشیه مثلا در این فصلهای زمانی نقل اقوان جا گرفته در این کتب اصولی مفصل اهل سنت که منگاره باید تو بحث اصول میادیم انصافا میشه گفت شاید یک پنجم کتاب همین نقل اقوان فلانی از این آقای این نهار کردی که دیگه, دیگه از اون آقای چیز دیگه نهار کرد خیلی عمر تلف کردن رو مطالبی که ارزش علمی نداره حالا هر عبارات مرموم وافی این مقداری که نقود شده همیشون که شیخ هم میگه شیخ میگه احتمال داره مراد صاحب وافی این باشه که مطلق صوت حسن یا صوتی درش ترجیه هست حرام نباشه صوتی که مناسب با مجالس لحوله برسن این مبنی خود شیخ دو احتمال درون داره که ایشون یه قنافی نفسه حرام نیست با ملازماتش حرام نیست این مقداری که ایشان مرقوم وافی در اینجا مطلب ازش نغره شده انصافا به هر دو میخوره ابراهام داره این چیزا تازه هم خود شما با یه معلم نیستین بعد یه مهنگام که ابراهام در خود جنب بوده خود که نوشته گفتن بیکاز خلاصو بگین ابادری که اینجوری نوشتی که خود چیه خود دو من وقتی نوشتم فقط من میدونستم خدا کسی دیگه نمیسن حالا منم نمیدونم فقط من خدا می‌دونه گفتم <تص> اوما خود انسان هم عبارات خودش هم رو نمی‌دونه، این صورت لوازم دیگران. در حال عبارت وافی این مردی که نقشیده ابهام داره، صفر نه داره. یک قسمت عبارتش موشر به اینه که ایشان قنار و فینرسه حرام نمی‌دونه. این قصرش موشر به اینه که قنای محرم اونی است که لحوی باشه و مناسب اونجوری لح باشه. غیر از اون حرام. هر دو احتمال تو عبارت هست خیلی و چون تازگی داشته مخصوصا این در زمان تخوییشون نوشته و خب در اون زمان دیگه خود مثلا شعب باز که دیگه رئیس اینها بوده مخصوصا در خوردن شباب اتا افراد میکرده به غناف در از به نظر من یک مقداری مثلا در اون زمان اون شدت بحران قوله به حرمت غنافیش اینها مثلا این ضعیف شده بوده به خاطر امتشاری در دستگاه به اصطلاح خود سخویی ها به هر مرحوم وافی رو من نمی کنم چون از کن ما بردون خوندن مکاسب یا وافی نیست ما مجمل مطلب حالا دو تا احتمال در عبارت ایشان هست شبیه این عبارت هم در بعد در عبارت اصطلاح مرحوم کفایه که آزامان من یکی دو نکته رو فقط در اینجا می خونم مثلا در آخر وافی گفته اصمم انصبت اجماعون فی غیره لا بقیه حکم و علالعباهه ایشون راه رو این رفته که اگر روایات روشن نشه پس ما برگردیم به اصالتالعباهه و حکم در طریق و احتیاط واضحه از خراجه به این مسئله این که اینها واضح نشه و روایات روشن نشه این رو تا اونجایی که ما میدونیم اولین شخصی که در فقه ما شروع کرده مرمون محقق اردبیلیه الان تا اونجا که من میدونم قبل از محقق اردبیلی نداریم ایشون فرمودن در این کتاب که چاپ شده هستیم. چاپ جدید شده چاپ قدیم هم داره مجموع فایده و البارها ایشون میگه به جمله لم اجیل روايتان سريحتان صحيحتان في حرمت بزن آن فرموند این این رو داره اینو مرحوم اردبیلی در مجموع فایده و داره مرحوم شیخ هم یک جایی نواره از ایشون اشاره اجمالی نمیکنه حالا من اجازه شیخ هم. در خلال یکی از بحث ها مرموم شیف بله این مطلب رو این مطلب رو بله در این کتاب چاپی دست من هست خلی 311 بعد ما وجه مرحوم اردویلی استثناء مراسی و غیرها که میگه در مراسی به کال نذاره به ما سبت علی اجماع لافی غیرها در غیر مراسی ولی اخبار لیستد به صحیح هستند سریح هستند به تحیم مطلبه هستند حالتا اعبارت من محقق این نیست که ایشون نوشتند ایشون طبعا به جمله نیلم عجب و اخ سریح هستن فی حرمت به نام این اشکال ایشان هست یقیقی میفهمنی؟ من خدمت آیان ارز کردم بعض کیفیت فقه شیعه و میراسای حدیثی شیعه و تلقیه با او یه طولانی داره تقریبا میشه گفت اولین طریقهی که سعی شده از اون طریق متعارف تا یک حدیقی خارج بشه توسط علامه است قدس علامه است علایق وقت کردیم این رو توضیحاتش چون در مناسبت متعدد چند بار ازش اون خوام تکرار نشه مرحوم علامه کاری رو که ایشون شروع کرد بیشتر کار حدیثی و رجالی بود بعد از اینکه ایشون انصافاً زیر بنا تغییراتی داد اما شاید مثلا خیلی تاثیر علنی نکرد اما خب چون بحث رو ایشون شروع کرد حدیث رو به چهار قسم کردن در صحیح و ضعیف کردن صحیح و موثق این کارها صحیح به معنای که الله میگه قبل از الله نبوده اشتباه نشده چرا ما لفظ صحیح تو عبارات صدوق هم داریم میگه از خبر صحیحه با اینکه اون مراد چیز دیگر است؟ اشتباه نشده در کلماتی که ما داریم اما امروز خوندیم ما من استیفارین کتاب صحیح و فهمید صحیحون در اون کلمات غیر از صحیح در کلمات علامه اومده از کردیم و یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در معارف دینی خودون با اهل سنت یه مقداری قرقاتی شده انصافا به این اصحاب ما ما از کردیم اهل سنت از سال سل و مشغول منابشات سندی شدن که از سالهای دیویست در اشتر سنده شروع کردن حدیث صحیح و صحیح موجودا کردن فرم از سالهای دیویست اما اصحاب ما از سالهای هفتصد این کار کردن مینصد سال با هم یه فرق داریم یعنی اولین شخصی که احادیث رو به تقسیم کرد به سفیو و ضعیف و اینها موصل علامه است ایشون متوفاه 826 هست وفاتش در قم 9 به علاوه 726 هست لكن خب فرض کنید کتاب‌هاشون و انتشار کتابشون سال 700 اول قرن هشتم دقیق می‌فهمم ما اولین کسی که داریم که آمده تورو به رو در منلا یحزر بررسی کرده علامه هست دیگه چون خلاصش آخر خلاصه. طریق الصدیق و الا فلان و فلان این اولین بار علامه است کتاب در سال‌های 1367 نوشته شده یعنی قرن 4 تصحیح تو قرن 8 شده تفاوت خیلی زیاده اولین کسی که کتابه واسه کلینی رو توصیف میکنه و تصحیح می‌کنه علامه است روایات شیخ رو رواه شیخ صغیر روا فلان چه ضعیف فلان فالحسن این اولین بار علامه است اینه هم علامه در بخش های رجالی این کار رو انجام میده و بعد اولین کسیست که در فقر تطبیق میکنه در مختلف مثلا بگه شیخ حسن روش شیخ به در تاریخ شیعه اولین کسی که این کار رو تطبیق میکنه علامه است در سالی که ما در میان اهل سنت از قرن سوم داریم سهی خود جامعه و سهیی که بخاری نوشت با اینکه اول معلف نیست اولین معلف مشهور هست اما اول نیست هم گفتن اول, اول بخاری داشته با هم اول نیست ۲556 وفاشی. یعنی حدود سالی ۳ 2020۳ این کتابی نوشته حالا من آن تاریف دقیقا تو زندگی. و شما مقایسه میخیم با کاری که ما کردیم اینی که این که یک مقداری درست این اصطلاح از لامه تغییراتی به این جددا بزرگ تغییری که بعد از لامه پیدا شد، همین مسئله بود که چون علامه اده زیادی از که در فتاقای اصحاب تضعیف کرده بود خوبینا سهی نیستن این مشکل پیدا شد که چه کار بکنیم روایت به تعبیر علامه سهی نیست به تعبیر دیگه عمل هم شده. این است که ما کرارم عرض کردیم از زمان شید اول و شهیده مسئله اینجبار مطرح شد خبستن خبر سهی نیست اما عمل کردن یعنی. پس این ای اینکه آیا شهرت جابر هست جابر نیست این اصلا در طرف شیعه نبوده اجتماعه شیعه از قبل هشت اون به بعده ایش که حال نبید مثلا شیخ توسی ممنون داشته ما اینا و لذا این را همه یکی که توضیحان میشه داریم ولذا این ممنون که شهرت جابر باشه یا جابر نباشه از منفردات ما شیعه شافیه هم ندارن هنفیه هم ندارن همبلی هم ندارن هیچ کدومشو ندارن این اصطلاحات رو عرض می یاد بگیدیم که در مقام منابشه با اهل و اختیار روایات مبانی ما با اونها خلط نشه متأسفانه این خلط پیش آمده این دقت بشه که این خلطها دیگه پیش نیاد شهرت روایی که دیگه پیش نیاد روایی وجود داشته که نه این معنی در مقابل شاست اون در زمان خود امام ساده خوب بمشتر به نصاب اون شوهر دیگه جابر شوهر است دیگه شوهر عملی نفسانی شوهر عملی برتر رو باید حالا من چون بخوام وارد بحث بشم مناسبم نیست توضیح بدم و بعدها تدریجا این بابی رو که علامه شروع کرد این منشأ شد که مقدار های فکری باز بشه انصافا لکن مثلا جوامل مقاصد از جزو کسانی است که در این جلد تاثیر دادن صافن بی تاثیر نیست ایشون یه مقدار آزادی فکر رو به کار میبره و سعی میکنه مطالب رو انتزاع مون که خیلی مشهور بوده مورد مناقشه قرار بوده، لکن قوی ترین ما در مجموعه آثار قدمه از مقدس ارده ما ازشان قوی تر نداریم. ایشون چی در اجماعش یشده در روایاتش یشده در سهت، یشده در دلالتش انصافاً خیلی مناقشه‌ات زیادی داره. یعنی میشه گفت که وان در فرشیه یک موج بسیار بزرگی رو به اندازه حجم خود ایشان هم شد شناخته نشده مرحوم محققه هردویلی قدس الله نفسه ایجاد کرد که در دو شاگردش من رو ساحب و ساحب مدارک متجلی شده البته تو ساحب مدارک بیشتر ولی مشکل مدارک که در مدارک افکار استاد متجلی شده و منافشات در روایات متأسفانه مدارک تا اوائل حج داره کتابش ناقصه البته شما در کتب استدلالی مثل هدای دیگران از آثار صاحب مدارک در غیر این موارد هم میشه یه ای هاشیه ایشون داره بر برمختصر نافه اون هاشیهش کامله. کنه زاره من نیدان تا چاپ شده باشه اگه تازه ای شده من خبر ندارم. از اون نعقل میکنم و اون مجموعه یا مطلبی که در اون آمده به توضیحات مدارک نیست مدارک واضح ده. در هر حال مشکل کتاب مدارک ناقص بودنشه. میشه به الا انصافا مثلا میخوام بگم حرفاشم درسته این یک مقدار همون مبانی علامه رو برداشته با دقت و ظرافت و با به اصطلاح حالت تعصب در فرجاری کرده و طبعا خیلی مبانی فقهیش خاص در اومده هم در آراییشان زیاده چون رای ترسه مرحوم مقدس بیلی برفرض هم منابشه داره یک سعی میکنه حالت شوزوزی پیدا رو کن. این مطلب این سبت اونفی کفایی هست. من از اجماع اجتماع فیلده مال کفایت من اشتیاقان از وافین عالکلمه اشتیاق وافی کفایت. من از وافین اشتباه اشتیاق من. معلوم خودش یه کفایت دو نه سر عبارتش خوندم بعد اشتیاقان به او نسبت دادم حالا این چرا که ما کار مربوط مقدسه عربی بی. کتابهاش از این جهت سعی قابل است. من این کتاب مربوط مذهب الفاظ درباره و که دار آیات احکام کی این ایشون بعد عبارت فوق العاده بود من هنوز ندیدم در علمای شیعه در متون فقهی کسی بدرتر از عبارت مقدس اردبیری داشته باشه که جواهرا بعد عبارته اما ایشون به مراتب بعد عبارت تری مرحوم مقدس اردبیری تو ضمن اینکه کتابم شده تو شاگرد لبنانی مرحوم صاحباله و مدارک کثیر که ده منش اصل خیلی. متنش خیلی مشعبره بود که با تضییج این صورت در به خلاف معالم و مدارک هر دو عبارتش فوق العاده روشه هم معالم هم مدارک مثلا مدارک به لحاظ وضوح عبارات فوق العاده این فوق العاده واضح و روشن به خطاب استادشون که فوق العاده غامض و درهم پیچیده عبارات ایشون الان کیف ماکان اولین کسی که راجع به این مسئله به اصطلاح غنا مشکلی ایجاد کرد مرحوم مقدس اردبیلی است که میگه لمعه عباراتن سحیحا صریحا زیلاده دگه خب وقتی مناقشه شروع شد دیگه دنباله داره اگر مروهم مدارک نتون حاشیهش مطرح شود یا نه اگر مدارکی نمیشه چون اینجا که رسید منکر میشد معلوم بود بخاطر نتایج رو منکر منکرش به هر حال این اولین کسانی است و از عجایب روزگار اینه که ما در میان مصادر اهل سنت هم اینو میبینیم دیدم بعضی از علمای اهل سنت هم نوشتن لم از اون سریع از در حرمت قنا عجبه که واقعا چطور تو وارد خاطرین در مذهب شیخ با مذهب سنی خیلی عجیبه. ولی من به این مناسبت یک تذکیه به قناتم از مذهب سنیام ان شاءالله بود به مقدار اشاره اجمالیش عرض می‌کنم. به هر حال مناقشه از زمان ایشان شروع شد و اگرم دقت بکنید شیخ الان عرض کردم عمدهی دلیل شیخ هم دو تا است. یکی اجماع و یکی مجموعه روایات. البته شیخ اصولا مسلکش مسلک مشهوریه خیلی دنبال بحث های سندی نیست من به مرحوم شیخ یک کتابی هم رساله هم در رجال نسبت داده شده مختصری از وجال و بعضی از هواید رجالیه در اولا خیلی چند فایده مختصر رجالی داره و چند نفر رو بده دارم هر فعلیف هم ناقص آورده باشه فنابو چاب بشه نفردم چاپ شده من دیدم بودم رساله خیلی رساله چیزی نبود, نبود. حاله. البته که ایشون عبارت تذکره رو هم بله. آورده او اجمالاً خیلی مجمل و مختصر که من نقل میکنم. کنم. مرحوم آشیعی هم در شرحش نوشته که این عبارت ناقصه و عبارت ایشون خیلی به هم ریخته برای اون چه. من معتقدم این بحثا که آ چی گفتن بعد ایشون چی بودن. وقت عمر شما رو میگیره خیلی هم نتیجه رو چندان نداره. من معتقدام کتابی کردم بخاطر چاپ بشه در هاشیش به جای این حرفا متن عبارت چاپی کتاب رو بیارن بهتر از اینه. این یک مطلب دو مطلبی که در این اصناف شیخ اورده مجموعه روایاتی است که از اونها این استفاده رو کرده‌اند مجموعه روایا یکی از روایات معروف است مال که عمرش هم سید کاشانی به همین به اصطلاح بله تمسک کرده از اون روایت اینطوره روایاتی از اسعبی بصیر که چه اشاره بهش کرده و یکی دو تا روایت دیگه من فقط نوکسید رو میخوام میگم در این صفحه 304 یکی از روایت مؤمنها ماعن الهمیری مراد از الهمیری در اینجا عبدالله بن جعفر الهمیری صاحب کتاب قرب الاساده این روایت تو قرب الاساده موجوده به سند لم یوبع اصل کیپای الحاقم به سها در حاشیه شمسین این عبارت در کتاب کفایه نیست کتاب احکام مغنی سبزواری یه حالا ایشون از کجا نقل کرده اشتباه کفایی. کس کتاب دیگری دیده جای دیگر کفای آمده احتمال داره شبیه این سند در کتاب کفای سرزاده در یه باب دیگری آمده شیخ اونو دیده گفته این سنده هم و حکم همون سنده این احتمالش هست برحال بعید شیخ اشتباه کرده باشه چون از رواجه به عبارت شیخ بله که ایشان کتاب کفایی دیده چون صفحه 300 میگه و نص بر قول المذکور لا صاحب کفایه بل موجود و فیها محچی نیست لذا احتمالاً در یک کفایه ندیده چون این مجموعه روایاتی است حدود دویست روایت در قرب الاسناد عددا 200 است ایشون نقل میکنه از عبدالله نه حسن مرحوم همیری عن جده علی بن جعفر شکیه. و توضیحات کافی رو ما عرض کردیم که این یک نسخه از کتاب علی ابن جعفر بوده که در اختیار همیاری در قوم از اصحابان القومی درست یک توضیحات رو جبیشان ارض کردیم که خیلی بزرگ باره خوب دقیق بکنید معروف از توقیات همیاری اون توقیات همیاری مال پسر ایشانه محمد عبدالله بن عبدالله اون جعفر و قربل اصناد همیاری اون مال پدهه قربل اصناد مال پدره توریعات مال پسره با همیگه اشتباه نشن هر دارم بزرگ بارم پسر استاد کلینی هم هست محمد بن حبدالله بن همیری استاد مرحوم کلینی هم هست حالا یه حاله مرحوم همیری در اواخر عمرش اینا غالبا نه همیری مشایخ در اواخر عمرشون کتاب های بنامه اسناد اصناد می نوشتن اصلا 15 سال بوده از یک پیرمرد، از یک استادی که پیرمرده حدیثی کتابش اینده. این در نه 80 سالگی اونم پیرمرد بوده. مثلا فاصله 150 سال، 200 سال، کم رو پی می‌شوه به یک واسطه. اینا رو قربة اسناد می‌گفتن. دارن ادعی از بزرگان قربة اسناد دارن. بخاری هم قربة اسناد داره. خود کلینی هم قربة اسناد داره. ثولاثیت کلینی معروفه که به سه واسطه از امام صادق رحم این چند واسطه خود مرحوم همیاری هم قربة این طوریه مثلا به دو واسطه از موسی بن جعفر نهرموزات همیاری حدوداً از 977 کرده قبل از 300 فوت کرده همیاری با دو واسطه از موسی بن جعفر صاحب این دو واسطهش یکی استادش عبدالله بن حسن این نوه علی بن جعفر عبدالله بن حسن علی بن جعفر از جدی علی بن جعفر هم جعفر خب این خیلی واسطه از بیه چون حضرت موسر میجرفه سال 183 شهادت ایشونه ایشون تقریبا سال مثلا دویست و, دویست و, دویست و قبل سی سال سی سال, سال همونجا کم روزی حدود صد سال فاصله است. صد سال فاصله رو با دو واسطه نهم میکنه عبدالله هم حسن انجدی علیه میجرفه سه دو قربل اصطورشنه سه قربل و کل کتاب مرحوم علیه و جعفر رو با این سند ابرده من الان یک اشاره دیگر می کنم از کردیم صابقه. این عبدالله و حسن ما نمیشناسیم شنسیم کل دفعا متاسفانه کتاب بسیار نفیسیست نام تاریخ قوم این کتاب در تقریبا سال معاصر صدوق نویسنده کتاب تقریبا خیلی کتاب نفیسیست نصاب نصاب قوم و معلومات قوم متاسفانه این کتاب ناقص به دست ما رسیده. معل شدید. ظواهر عبارات اسم عبدالله بن حسن توی کتاب هست به مناسبتایی. ظاهرش میگه در فصل 16ام، باب 16ام متعرض و علمای قم میشن. این فصلش به ما نرسیده. این فصل 16 همش. اگر این فصل بود، معلومات ما از عبدالله بن حسن خیلی خوب میشد. متاسفانه معلومات ما از عبدالله بن حسن خیلی ناقصه. لکه با شواهد این کتاب معلوم میشه ایشون جز ساداتی بوده که از مدینه به قوم آمدن عبدالله بن حسن ابن علیه ابن جعفر نبی امام صادق ایشون به قوم آمدن و در قوم ساکن بودن ما از ایشان معلومات نداریم تنها چیزی که از ایشان داریم کتاب جدش رو برای قومیان نقل کرده کتاب مسائل علی بن جعفر و مرحوم همگیری از ایشون نوشته مشکل اساسی ما بزرگان قوم ما که مثلا در این زمان مناسبه از این نسخه نقل نکرده. مثلا کلینی از این نسخه نداره. صدوق از این نسخه نداره. ما نمیدونیم چرا ما تلتشم نمیدونیم این نسخه چرا ما الان به استثنائی کتاب قراب اثناء من مهم یاری. دیگه از این نسخه نداریم این چراشم من الان متلق نیستن نمیدونیم یعنی جهل ماست در حال این که میگه به و خود این جادله امام امام ایشون امامزاده بوده مثلا نوری امام صادق سلام داره و کتاب جدش هم بوده از مدینه آورده قابل اعتماد مثل همیاری که شخص بزرگوار ایشون ده تا قرائن مجموع... خودتون بقیش حساب بکنید مجموعه این قرائن رو ایشون جماوری کردن و این بدون نفی هستن که این عبد الله بن حسن سر است و الا عبد این واژه چون یه بحث رجالی ایشون به نحو اشاره فرمودن ما هم اشاره کرد. در اینجا داره سأل تو انال غناف و از ها ولفره فقال علیه السلام لا بأس مالم یعصبه من چه غنافی نفسه حرام نیست مگر با اون اسیان بشه مالم یعصبه بعد ایشون الان نشوه المراد بهی ظاهرن مالم یعصبه غناف سرون للمعصیه مثلا بعد مرحوم شیخ انصالی پرمودن و فی کتاب علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام از خود کتاب قال سر تو انرقنا في فطره وله از حاول فره قال لا بأس مالم یوز مربه زمار یعنی با ساز و ترب و با آلات موسیقی اینا مالم یوز مربه این روایت رو مرحوم شیخ انساری شیخ انساری از کتاب کفایی سرزواریست من الان نمیدونم از خود کتاب علی جعفر نره کرده. و این حاشیه نوشته نورشته مسائل علی ایم جعفر سفری فلان من چند بار ارز کردم. این مسائل علی ایم جعفر که تازه چاپ شده مثلا در پیس تازه چاپ شده این همون نسخه بهار هاره برداشتن چاپ کردن کتاب خاصی نیست و یه توضیحات مفصلی رو ارز کردیم که کتاب علی ایم جعفر نسخی داشته من جمله این نسخه است. این نسخه در اختیار قدم های اصحاب ما نبوده خیلی نادر حالا من شرک نسخه مخامجه بدن خیلی نادر از قدم های اصلا کامل زیاد حدید نسخه نبوده. این نسخه احتمال در اختیار زیدی ها بوده در اختیار, ها. در اختیار اصحاب ما نبوده تا قرم یازده یا دوازده ها مرحوم مجلسی رحمه الله این نسخه رو یک جا در بهار بوده جلد ده چاپ جهد بها ها نسخه کامل کاموی ارده که بعد ما به اسم مسائل علیان جفر شده درست هم هست تو بهار هم همینطوره مراد شیخ انساری باید ظاهران بهار باشه تو بهار هم همینطوره مالم یوز مربه و چرا از همین نسخه بهار در اختیار مرحوم شیخ هرم بوده و این نسخه ضعیفه توضیحاتش مفصل از سنوی تکرار نمید بکنه اما از اجایب اینه که در کتاب وسایل این جواده لرآواه و علی مجازاتشی کتابیه سفالی و انفال لا بحث اسم معلم یو مر ما الان سه نسخه از این کتاب علی مجازاتر داریم. یکی که خیلی قدیم در اختیار همیاری بوده، لا بحث اسم معلم یو صدر یکی که در بعدها در قرن یازدهم در اختیار شیخ حور بود لا مالم به اسم معلم یکی هم همون نصخه که در اختیار مرهوم مجزیسی بوده لابعث مالم یز مربع زم زمار یعنی هم نی بسه نایی نه نی که از چوبه هم که آلط خاصی میده به حساب مزمار به حساب این هم سه تا نصخه از این رواد آمده اینی که شون نوشه کتاب علیم جرپه این طور از, از کتاب حمیر این سان این همه به حساب احواه همه نصخه هست از کتاب علیم جرپه بلاحد ارزیابی هر دو نسخه مشکل داره نسخه مرحوم بهار مشکل زیادتری داشت اینجوری نیست نسخه بهار حدود 410 روایته اشتباه نشه خیلی ارزشش زیاده حالا چراش و سببش چیه یک داره که خیلی طولانی جا نیست نسخه مرحوم همیری حدود 200 روایته دو نسخه هم در اختیار مشایخ تراسته بوده مرحوم کلینی و صدوق و شیخ توصی، اون عددش به اینها فرم میکنه دیگه توضیحاتی که اینجا چون همین مقدار ما خواستن راجعه عبارت در کتاب مرحوم شیخ توضیح یک توضیحی بدیم این یکی مجموعه ای که کلی نوستار که مجموعه ای که شد به ستتا نمی باسه ستا نمی باسه کلین و سولیون وقت مشکل اینه که نسبت بین این نسخ هم در همه شمان خوصه من رجه واقعی اولی که در هر دو نسخه نیست من نسخه چار ست تایید نسخه دیویست تایید این هم ما یه من وارد این بحث نشد مجموع نسخه‌ای که ما الان نسبتا داریم در اختیار ماست دو تا نسخه این دو نسخه یک نسخه به اصطلاح موسف مقاسم بجلی موفکی ن این هم درخت‌های کلینی بوده هم صدوق بوده هم شیخ طوسی ارزششون عزیز ارزششون از این, این درسه یکی هم نسخه همیری که کسی از این نر نکرده یکی هم نسخه است که درشدار به حال حداقل 11 12 درشدار صاحب بهار بوده که مثل کامل زیارات دیگه حدیث ازش نر کرده از حال از اون نسخه نرخه توضیح این نسخه شرح‌هاشون و سبقاتشون طولانی چون مرحوم شیخ انصاری اشاره‌ای کرده ما مخواستیم این اشاره در حد یک توضیح خدمتون اعرض بکنیم اینه که ایشون فرمونده از همیری و نسخه یعنی از اونجا اینا تماماً یک کتابه البته حالا واقعاً نسخه بهار با نسخه همیری واقعاً یکیه یا اصلا اون یک کتاب دیگری بوده این از اون تلخیص شده یعنیم چون شرحای طولانی داره و نام وارده بست نمیشن چون جاشی جا نیست و هر حال ما الان این روایت رو که استثناء در ایی شده من توضیحش الان ارزم چون یه بحث حدیثی داریم یه بحث فقهی داریم بحث فقهیش اینه اینشالا این امروز چند دارستیم آخر بحث مرحوم شیخ میگه دو تا استثناء شده یکی در هدی یکی هم در اعراس مجالس عروسی نه یکی بیگر مجالس اید این مرموشه بگیرن نرشتن تعجیم هستم از مرموشه بگیرن نرشتن این روایت علیان جرال از نوید که استثنای اید داره ارشان شد که از نظر فقهی این استثنای ثومه از یکی هودی صدایی که برای شطار بخوندن یکی برای عروسی این دوتار شیخ رو برده سنیه ها هم این دوتار دارن اضافه هم کرن اید جدیل برای استثناء این هم این روایت خود شیخ انسایی نیمونده این تعجب از مرگون شیخ بفرم دام خواهم خوشحالی نه خوشحالی چون توی یه روایت اهل سنت نمیشن از پیغمبر که دو تا مغنیه پیش آیشه مغنی خنام میخوندن بعد ابو بکمان نراحت شد پیغمان گفتشون کن اینا روز عید اشکان وحادا ایدونا وحادا ای اصلا گفتن در فرح و اید و اینا ها اشباز هم. این راجبی یک مطلب دیگری که ایشون با دو مورد مرموم شیخ سفیل 305 و روایت عبیبسیر باز داره و ان عبیبسیر ان عبی عبدالله ما سابقا توضیح دادیم در بحث پروش مغنیه انشاءالله بازم میخونیم باز رو این روایت عبیبسیر یکیه نسخش مختلفه شیخ سفیل دو سفیل اینام یکیه من دیگه خیلی وارد بحثی می چون این بحثش چون در بحث روایت خواهیم گفت پس بنابراین خوب دقت بکنی خلاصش اینه که این دو بزرگوار الان تقبیر صحت نصفت مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی به استناد بعضی از روایات گفتن غنافی فیزات حرام نیمید چون این بحثش اصلش اینه جواب علمیش اون روایت رو باید بخونی. اون روایات رو بای پس است... استناد به اون روایت درست هست یا نه؟ بگه شما الان اینجا معتل نمی‌کنه. وقتی خوندن روایت اونجا متعرض می‌شیم. فقط یک دو تا نکته‌های فنی رو عرض می‌کنه. و روایت عبی بصیر ان شاء الله سه تا مرتبه داره. ایشون دوتا تاشو آورد یک متن دیگری هم داره و ما سابقا یک توضیحاتی دادیم. باز هم دو مرتبه ان شاء الله تعالی متعرض می‌شیم. در هر حال این را ببینیم. و اما بحث دیگری که ایشون مرحوم شیخ آورده اینه که بعضی از افراد گفتن که غنا در مراسم اشکال نداره که مرحوم مقدس اردبیری هم آورده یه بحثی بحث کبریه احساس به اینجا نداره مثلا گفتن شما اگر این حدیثی درباره قضایای روز آشوراست سندش هم ضعیفه بلکه مثلا جاهل مجهول مثلا مج... مج... مج... مج... مج... سندش کذابونه گفتن اشکال نداره روضه خونیم برای اینکه مردم گریه بکنن اون گریه برصد شده که استحباب داره اون عله ای که میگه کار برصد شده مستده اون اقضاء میکنه که رووارد مجب هم بکنیم از اون گریه بکنن یا مثلا من بلغ هوشه آملا سووا ال عمله روات من بل روای من بلغ شامل بشه دق بودی این رواییای که درباره حواظث ک ها و ظریف چون منشه گریه میشه گریه هم ثواب داره. شبیه این بحث آمده جای دیگم آمده. جوابش همون جواب علمی معروفه البته جواب داره ما به همین جواب مرحوم شیخ اکتفا می‌کنیم بعد در توضیحاتش اگر خدا توفیق داده عرض می‌کنیم مرحوم شیخ میگه ادله مستحبات به اصطلاح خود با ادله ترخیص جن نمیشه با ادله الزام مثلا اگر گفت جریه ورثه و شهدا مثلا ثواب داره این معنیش نیست که شما مطلب دروغ بگید تا دیگران گریه بکنن این معنی اون عبارتی نیست عدله مستحبات با ادله الزامیات تنافی ندارن این یک تعبیر یک تعویر دیگر میتونید بگید بگید عدله ترخیصی مشرع نیستن مثلا کذبی که حرامه به خاطر اینکه که سبب افکا بشه بگیم حلاله. غنایی که حرامه در جایی که انسان در مرسیه سیدو شده غنا به کار ببره چون سبب افکا میشه بگیم هلاله ادله مستحبات البته نقطه دیگه هم داره من دو نقطه که برون شیف در این همین جسای اتفاق می و این البته خیال نفهمهد حالا مناسب نیست اینجا این مطلب رو بگید. این اینگاهی برای بزرگان هم این شبه بیش آمده که واقعا برای خود من تعجباوره که از این بزرگاران یک در این جلده هشت اسفار یه بحثی داره در عشق زرفا و وجوه الملاح و یک فصلی داره که واقعا مناسب نبود. مرحومه اسفاری بحث اصل این بحث در کتاب رسائل چی آمده رسائل کیه اون اخوان و صفا آمده تقریبا یه تغییر خیلی کچی که صدر از اخوان و صفا اسمی بوده ملاسده اسم اون نبرده. اصل مطلب تو رسائل اخوان و صفا برای متاسفانه ایشون آورده که مثلا اشقه مثلا ملاح وجود. عجیب حالا اوم خب خود این کار مرhum الله صادق خیلی عجیب انصافا خیلی حرف عجیب و ای حاشیه شده از مرhum صدرداری حاجی وزن رو علیه. میگه این مطلب رو با اون رواجی که نظر به مثلا به ملاهه وجود حرامه سحرامه رو جمع میکنی؟ این میگه از باب شما نبایدشون هم شم بیشتر بیشتر. خیلی عجیب. اگر از مثل مرhum الله صادق رو مطلب عجیب و عجب حاشیه یوسف. اون میگه اون روایاتی که میگه تعظیم بکنی افرادو با اون روایاتی که مثلا میگه حرامه اینا رو با همدیگه دیگه جمع کن با بحث اجتماع نه اصلا این نکته است که مرحوم شیخ در اینجا میگه ادله مستحبات اون ادله تعظیم با محرمات به هیچ وجه جمع نمیشن اصلا بحث اجتماع نه جدول بحث بحث اجتماع نه در بین ترخیصی یا الزامیات این چاپ شده این کار شاپ نمی‌کردم از حاجی خیلی عجبه عجب از همه از حاجی که بین ادله مستحبات و محرمات آمده گفت اینجا رو به اجتماع نهیه از یک جد مبعوذ از یک جهت منهی اصلا اون ادله مستحبات رو شیخ نداره این تعبیر رو این تعبیر رو شما می‌تونی اضافه می‌ذاری مراد شیخ هم همینه اصولاً ادله مستحبات مر... مشروع نیستن یعنی یک چیزی رو که حرامه حلال نمی‌کنه این کار رو انجام بده کار عدله مستحبات و ترخیزیات تنافی با عدله الزامیات نیست جای اجتماعن رو نهیم نیست اصلا موقعی به اجتماعن هم نهیم نمیست. پس این مطلب که غنا در روزه سید و و غیره اشکال نداره اون هم روشن نیست بعد ایشون بگه بقیه الکلام فی استثناخل مشهور میدن غنا مرهوم شیخ میفرماید دو تار استثناخ کردن که هدیه یا هده که البته در هدا اهل سنت روایت دارن روایت هم دارن روایت دارن که دیروزم اشاره کردیم. یکی هم قناه مغنیه فلع اعراس البته این قناه مغنیه در اعراس هم هست سرونیش هم قناه در اعیاد که مرحوم شیف در اینجا نیابرده هست. بعد در اینجا اون روایت رو نعلم کن روایت عبی که گفتن دو نسخهش شنر کرده سه نسخه داره یشون داره لاکن فی سنن ابو ابوبصیر چون گفتم مرحوم شیخ اصلا بحث رجالی نداره جا داره حالا ما بر این که خالی از فایده نشی که محترز میشم ایشون فع لاکن فی سنن روايات ابوبصیر و هو غیر ابو قابل اعتماد نیست خیلی عجیب از مرحوم شیخ و خیلی واقعا حالا مگه ایشون مرادش اینه که مثلا اشتراک شدیدی داره نمیتونیم بشناسیم بله عرض کنم که در اون رساله عدیمت النذیر در ترجمه احوال ابی بسیر 12 تا ابی بسیر اسم برده که اینا واقعیت ندارن ابی بسیر کلا 3 تا نه اگه این سه تا قبول دارن یکی لیث یکی یحیات و یکی هم عبدالله بن محمد اصلی و لکن عبدالله بن محمد عثری هم ثابت نیست ابی بسیر باشه دو تا بیشتر نداریم همین رأی که مرحوم خاموس قاموس رفته صاب قاموس یک رساله در ابی بسیر داره و خوبم گفته حرف ایشون درسته ما دو تا ابو وسید بیشتر نداریم بحث راجع به ابو وسید خیلی فراوانه و هر دو هم ثقه هستند این کلمات مرحوم شیخ هم شاید ناظر بوده به برخی از مطالبی که دیگران گفتند مثلا این ابو وسید دو تا بیشتر نیستند و هر دو هم از بزرگانند یحیی بن قاسم البته متاسفانه این شخص پدرش نامش واضح نیست یحیی بن یا یحیی بن دیگه من بحث رجالیش البته انصافا توی مجموعه روایت ابو وسید خاصی داره مشکلاتی داره تشخیص این دوتا مشکل داره انصافا همینطور یعنی و خیلی بحثای لطیفی داره یکی از نقاط ابهام در اسانید ما هم همینه اما اجمالا هر دوشون قابل اعتمادن و این بحثی که ایشون فرموندن درست نیست بعد می ولی شهرت و علاوجین تو جبل انجبار ولی بله. غیر ثابته شهرت اینکه در اعراض یعنی در اعراض لعن المحکی عن المفید والقاضی و ظاهر الحلبی و سریحه هلی و تذکر تذکر روشنی هلی مراد ابن ادریفه ول ایزاه به علامه بل کل منلمی از کرا الاستثناء بعد تعمیم المعنه لیکن الانصاف انسان در رواد بین انتحت الى عبی بسیر الا انهو لا یخلوم نوسوغه نه توسیق هم شده الان ما انشاءالله تعالی ارض خواهیم کردیم استثناء احراس در روایات سنی ها آمده و در روایات ما هم یک جا آمده هم یک جا آمده هم بعد عرض میکنن و ها ایشان ترجم نکردن در کتاب علی بن جعفر هم آمده لکن در دو نسخه علی بن جعفر آمده که نه کلیگی نرکرده نه صدو نه شیخ توسی ما انشاءالله تعالی توضیحات این برد هم هدا هدی و هم اعراس و هم اعیاد هر سه در کلمات اهل سنته اینشالله تفسیلشو بعد از اون بیم این که نکمونه رو درست هم در تاریخی و روایی و رسیب فرمانیم توضیحاتش بعد اینشالله این کل کلام به شیخ بعد متعرض اجمالا اهل سنت میشیم و بعد وارد تحقیق مسئله در روایات خودمون. و صلی اللہ